درس نهم مازندران استان مازندران در شمال ایران و در کنار دریای خزر قرار دارد این استان در گذشته تبرستان نامیده میشد. باستان باستانشناسان معتقدند که این منطقه یکی از قدیمی ترین است که بشر در آنها زندگی می کرده است مازندران در دوران قبل از اسلام همواره دارای اهمیت خاصی بوده است و نیز پس از اسلام این سرزمین جزو آخرین مناطقی بود که به اسلام گرویدند نگفته نمانند که در واقع طبیعت کوهستانی و مرتفع این سرزمین پناهگاه امنی برای مردم این خطه بود و تا مدت ها این منطقه با مسلمانان می جنگیدند و تسلیم نمی شدند. در عصر حاضر نیز مازندران از اهمیت ویجهی برخوردار است. چرا که ذخایر ارزشمند نفت در کرانه های جنوبی دریای مازندران اهمیت این منطقه را دوچندان کرده است؟ به علاوه طبیعت زیبا و مراکز جهانگردی این استان همواره مسافران و جهانگردان داخلی و خارجی را جذب کرده است فارسی آمیانه کتابی گلی ترقی تولد از توی اتاق صدای جنجال و همهمه می آید یک نفر سرش را از پنجره بیرون می آورد و به اطراف نگاه می کند نفس نفس می زند و چیزهایی نامفهوم می گوید توی دستش چندتا تا هوله مچاله شده خونی خونیست برادرم را صدا میزند و منتظر میماند صدایش را بلندتر میکند و جیغ میکشد هایش را بالا میاندازد و تف میکند توی هوا رویش را به من میکند و میگوید بیا تو زود باش بیا باهاش حرف بزن یه کاری کن یه چیزی بهش بگو تو رو خدا یه جوری ساکتش کن ما که دیگه کلافه شدیم الان دوباره شب میشه و دستمون از همه جا بریده است توی اتاق تاریک و دم کرده است گرم و بدون حواست. از تخت وسط اتاق بوی داغی تن و التهاب پوست می آید مادرم لای ملافه ها تغییر شکل داده است صورتش به چرکی چلباری است که رویش افتاده و موهای قرمز رنگ کرده مرتوب و حلقه حلقه به گلهای زرد و نارنجی روبالشی کسبیده است انگار نوعی بوته غریب صحرایی است که از زیر تخت روییده در امتداد کله گلدارش چیزی جز فضای خالی نیست میبینم که دارد میمیرد که پوستش زرد و پجمرده شده و در حال گسستن است که خطوط اصلی صورتش انهنا و امتداد طبیعش را از دست داده و گوشتش بوی لاشه گرفته است میبینم که چشمهایش حراس و حیبت قریب گوسفندی را دارد که به کشتارگاه میبرند و نفسش بوی ظلمت زیر خاک را میدهد ایران را بهتر بشناسیم. گلیم. چندین گلیم برای فروش در یکی از بازارهای ایران. ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ فرش و گلیم در جهان است. سود این صادرات قسمت عمده ای از سود تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. این فرشها و گلیمها دست باف هستند، زیرا فرشهای ماشینی بسیار ارزانتر از فرشها و گلیم های دست باف هستند. در بافت فرش از نخ ابریشمی یا پشمی استفاده می شود وسیلهی که قالی را روی آن می بافند دار نام دارد